بسم الله الرحمن الرحیم <تصفيق> و الحمد للجاه رب العالمین رسول الله و عمد سیدنا رسول الله و آلح الطیبین و طاهرین و منصومین و منصومین اجمعین اللهم و فقن و جميع المشتدرین رحمنا و رحمتك یا ارخم و رحمی افترین بحث و و رحمتش بحث پخت اجرت یعنی فضاق غازی یه چون مرمونشه دونستات غشه باردین بحث شدن و ارز کردیم مرمونشه مجموعه انابینی که در اینجا برگن چهار عنوان هم. یا پنجتو شد یکی عنوان غشهی و غازی یکی عنوان اجرت غازی آیا از طرف متخاسمن یا از طرف سلطان یکی غزه غازی شهری غازی یکی هدیه دادن به غازی یکی هم محامله محاباتی کانه سر میلیونی و میلیون به قاضی به این معنابی است که معظوم شیعه در اینجا متعرض شده محل به بحث که به مناسبه پیش اتباره شده که رشوی به قاضی میکنم مثلا حرام با قول محلو اجماع مسلمی ایل از اجماع شیعه روایات هست خدا از اصطلاف محل روایات این که رواییات بارده یه بحثی. بحثی که معلومه شد فرمونده یکیش این بود که آیا اجرت به خودش حرام یا نه این یه بحث یه ای بحثی اینه که آیا اجرت به غازی رشوه هست یا نه از دو تا بحثی یه ای بحث آیا حرامه یا نه یه ای بحث اینکه که آیا این اصلا رشوه است یا رشوه نیست از که بیگه مناسبه داره بحث شدیم گفتیم اول متعرض روایات خوشیم چون مسئله این که قاضی باشد و خوده بگیره یا حتی حاکم این مطرح بوده در خیل احلسانت اینشالا بر عبارات احلسانت رو برای یه بیشتر مرحله بعد متعرضی این رو از رمان رسول الله نه رو کنیم در کتاب حلکه دایه در حنفیه این کتابه الان هم فیدیوان هم سنیا مثل کتاب دهتی شده تا بعدی داره این متن منجزه خیلی منجزی به سرح هنفیه اونجا داره که به همه هم که علی نروی رو به عنوان قضاوت میگم به فرسته در برای اون مبلغی در آداره. ما, این ما در این کتابه کتابی سنوم نسکه را از علمای حنفیس ایشون هم انام ای زیله این زیله منشر در تقریبا ایشون در دریای احمد سر یومان هم دیاره متسره اهل و منتریز هلایی حادث ایشون هم نویشته که لم نجیب یه اولوان به غیر علیه نجیب و دار راجب دارن اهلسان از روی کم اتخاب ابن عسید از روی کم و وادی مکه قرار دارم بعد مکه در سال هشتم تجری که فکر مکه شد به همبر اکم رو به عنوان مکه و برای اون روزانه به نظر من روزی یک بیره به نظر من برای او قرار میگه من این تصرف نکردم نمیم چی خیلیدن و قاضی هم به نظر برای معاظم نجده اما ده تقا من برای اکثرشا نقد شده اول به خود عمر اول بخو اخبدار بود بعد از اینکه به اخلاق اون آدم شماها حکیم که برداشت بره بازار بزنه گفتم نه میگه شما خلیفه رسول الله به اندازه می‌کنید اون وقت داره سالانه 200000 هم و بعد تو کم نذارم 50000 درهم نه وقت از اونجا دیگه شروع, شروع شد این از عهد صحابه این جعل بیت و رز از دی مال شروع شد وقت من نرخاشم غالباً ذکر شده مثلا شاهی که زمان آمد قاضی شد ذکر شده خود در دعمیر گفتن به او پونست هم میدون اینا ذکر شده ماهانه که او داده میشه. حالا اگر حالاً ها یه مفعلی که سابقه داریم من ریشه های سابقهش رو عرض بکنم که بعد درستیم به ریشه های شیعه خودون و اما در روایات ما اون ا و همه در روایات ما از که از این قدیم این قدیمترین ما هم متعرض این روایت شدن که مرمون ساق و سائل سر روح این روایات رو در بابه هشت از اقواب آداب قاضی جمع پرندن بابه هشتی که دارن که من از اون با حدیث اول رو خوندیم که از عبدالله ازن سنان بود و از که حدیث انصافا خواهی شبهه نیست این ذهن ما حدیث خیلی عوشن نیست یک دو اشکال دیگه هم برد داره که عرض می و گفته شد که همین حدیث واحد رو هم اصحاب ما مرحوم صدوق یا خود صاحب وسائط جوره های مختلفی معنا کردن که باز دو محامسه به حدیث شماره دو یه حدیث مفصلیست که مرحوم کلینی در کتاب اصولشون رو بردن و, و مرحوم شیخ توسی در اقواب همون انفار و صدقات اونجا بودن. زکات اونجا بودن. حدیث مفصلی است. که اونجا داره که یکون داره که ارزاق احوانی که علا دین الله وقیه مسئله هست مایانور برود من تقریبیت اسلام. یک این اصلاق شامل قضاوت هم میشه. چون تمام وزاعت کنه ها در حال نظامه یکیش هم همین دادگستری و خاطر میکنه. مرحومه از این عباره به شون تحقیلن که جایزه از کلم در ویروز بحثی مرحوم صاحب وسائل سر کلم بین این روایه در روایت قبلی جمع اون روایت قبلی که روز در سلطان صحبت. این روایت داره که احوان حکومت دولت مال با بده کیفیت جمع و صاحب اینطور این رو یظهر من هو جواز الرسل للخارجين بهتبا از این روایت دوو بعد یاس حدیث اون آخرو یه حدیث دیگری خواهد آمد اون حدیث شماره 9ه به عهد مالک اشتره که ان شاء الله می‌کنه فلان نسولام كثير متفرده ما روایات زیادی داریم که به طور کلی باز مسئله جامعه مراعات بشه مسلحتمون این رویات در وقت مختلفه، یکی از اون مسلحتم قضاویت پس ما داریم و لعل ال اوله مخصوصون به ما یکون و من از سلطان علا قضا پس با اون روایتی که میگه داره کس فقط جوری جمع بکنیم این کیفیت جمع صاحب وسائله اون دقیق بکنیم صاحب وسائل این جو جمع بکنیم این حدیث دو رو میزنه به بیت المال حدیث اول رو میزنه به سلطان یعنی دو جور میشه یک دفعه غرف از بیتلمال ماهانت از المال، اون جاییه یه دفعه سلطان از خودش میده از انبال خود سلطان میده اون سخته بون سلطان رو بایده سلطان گرفته نه بیتلمال بگرد در اون چی که من از سلطان یعنی ادمال شخصی پادشاه اگر شاه از خودش میده این سخته اگر شاه از بیت المال و خزانه و معنواد عمومی میده این اشکال نداره. این وجه جمعی که محومه سال و سال خیلی عجیبه نیم خب سلطان بارن که نه از بیت المال بیه. ولی ایشان بلکه جهر این امجیبه قرار دادن. برانیج الله و علا کنده خزانه شیعن معین. یعنیج علیه سلطان نه از بیت المال. و لذایشون رزق و از بیت المال. سلطان هم حرام میدنه. اول کل یومی شیعاً معایدن خیکون و او و رشوتن رشوتن این تعدیر خیلی لطیفه تعدیر ایشان یا اینو اجرته که ظاهرم اجرته ظاهرش ممکنه این رشوت هم حساب بیاد چون از تردین و از دو قائل هر طولی که دا قاضی داده بشه هر رشوت سال و اجرت باشه اینم یک سکت از زمان بختش خمسالیم همینه که آیا اوجزت برای قاضی غیر از رشته است، نه هم اجرت که می‌دونی رشته است. رشته شما لحاظش می‌کنی. تا یک کنوا اوجزت کنم او رشته. این مثل رو جهشیم، جهشیم که ما قراره ذخیرشون کنیم در زیل حدیث نو هم اینطور می‌گم. اگر اولو این زیل حدیث نوه. و تعداد ما از لالازاله در بحث رشته ما متعلق مربوط رشته باب باور تجارت خوندی جلد این چاپ مردمای رباني که الان دستمون هر زندگی دوازده تا پیش 60 گریم، 60 یا 60 دو رو چه دیگه داریم؟ و ایت قرآن ماندند بر علیه سبک و غیرها، ولی حدیث اخیر آخر، مورد از حدیث اخیر همین اهنامه مالک اشتر چون سراغتند در اعناق در و فصل لهو فل مذ، این به قاضی کوی بده ما یوزیو ه او، و تخلو معه او حاجت الناس دیگه نیازی به رو مردم نداشته باشه که روی های برشه اون پیل گرسن و, و لحدی سال اخیر محمولون حالا اعطا القاضی من بیت المال به قاضی از پیت المال لا لعجزه ان یعزی نه به خاطر قضا چون ایکی از مناسب اشتماییست بل لعن نلهو حق تنفی کم ساله چون یکی از مناسب اشتماییست اول رضق خیلی اقوال دیگه حالا عبارت که تابر خیلی برای اکنمون شده مرادیشان رزق فیل اول در اول مرادش حدیث که همون حدیث عبدالله مثنان که یعقوب من السلطان عران قضا ار رزق از الرزق فیل اول یراد و به اجره این هم یک احتمال که مراد اجرت باشه او, او مایو خردن از سلطان لا من بیتل ما از آیه حال مرگوم بزرگوار صاحبت صاحب, صاحب گیری کردن که بینید این احادیث رو جمع بکنن خب اصحار ما خیلی راحت جمع کردن اینجا مشکل نداره اون یه خبهن از سلطان را هم کردن در سلطان جایر اینه که احوان این جزو نظام اجتماعی اون یکی هم که مال مالک اشتره همینطور پس این اجرت گرفتن به از طرفین یا از دولت اصلا تو این روایات وارد نشده اونی که از ارتضاب ارتضاب ه اونی هم که اول با قانونیشان هست اون ناظر است به مسئله سلطان شاهر این توجیه هاتی بود که مرموم سال وسائل از وسائل مرموم تکنیه باز تو میفینه که از سوائلشن هم در جمع حدیث اینه تو جامال است غالبا این کار رو نمی کنه مرموم نیداره نازر داره مثلا اگه شهر جمع کرده داشته نمی کنه همه خود مرموم برژهوی یا چیزی که با جمع کرده این کار را انجام نداری که من به این حفاظیست اما در رسائه این جمعه های به این حفاظیست رو داره رضوان الله تعالی افکر من که من صابرم روایت اولی مشکل داره یعنی این صاحب من قازم به این قریه تهیم من بیروز افکرم مضاقرم افکرم که بزن سوئل ابو الله احتمالا اینجا سائل سنی بوده خیلی برید شیعه باشد مثلا رواله به که از ابحامی که دوز عزید چون وقتی سوال می کنه انقاض بین قریفه یعنی خودومن از سلطان حدر و قضا از بار لارده سلطان این سوال و کبا حصولا مناصبه با فتح همه سنده نه فهشیه من همیشه عرض کردم مثلا فتح همه سنده یک بوی خاص خودش داره بیر از فهشیه اون طب احساسشون اینه در فقر اهل سنت فقیه سنی خودش رو ولی نمیدونه اصلا خودش رو والی و ولیه امر رو نمیدونه چون در فقر اهل سنت ودایت با وعیت من حقیق میشه مجرد این که دیگه در کنگوشه و خونه بیشنه فقیه بشه بگه من قاله ودایت و فقیه هستم من ودایت دارم چنین چیزی در میان اهل سنت وجود نداره که بگه من چون فقیه هم پس ودایت دارم فرد استنباط شعن فقید استنباط سر صرف می دونستن ولایت نبود ولایت رو شعن حاکم می‌دونستم، حکومت و با قبل امارات معاملین رو امیران بودن رو هم به مسئلهی به عقل می دونستن. بله حالا فرصلا امیر معاملین فتای ابو همیفه یا فتای شافیه رو عمل می حاکم اما اینکه که برای خودش ولایت خواهد باشه نبودن این سوال به این نکته که آن کردم این فرض یک سلطانی میکنه فرد یک قاضی میکنه که این سلطان رزمی در فقه شیعه اون سلطان خود امام محظومه در فقه شیعه معنا نداره که در امام واجه به سلطان بکنی چون اگر اولا خود در آن زمان که ما قاضی شیعه نداشتیم سلطان شیعه که نخوده گرده سوال بیشت حالا که شخص این درده این واقعیت نداره این س اصولا اگر سلطانی هم بوده در فکر شیعه باید منصوب از روی امام باشه ده برد میکنی معنا این از در فکر خیلی نقطهی چون توجه نشده خیلی از روایات اصلا و هواش آبا هوای احل سنت فضاش فضای سنگی فضاشیعه نیست این انقاذل سوالی که قاضی به دست سلطان میگه این چه طرز حکومت سلطانی هست منصوب از, از طرف خلیفه چون در اصطلاح اون زمان یک خلیفه میگفتن که در اصطلاح مثلا زمان ما مثل رهبری باشه یک سلطان میگفتن مثل رئیس جمهور اینجوری حساب می‌کردن سلطان ایلات خلیفه بود سلطان اون مرحله اجرایی بود این در کتاب نوشتار تاریخی در مثل تغری و ابن عثیری الا سلطان اینجوری بود خلیفه اینجوری یک حلیفه میگفتن یا امیر مهمین یک سلطان بود پس انقاض بین ها این قریه که حالا یک اشکال قریه که بود که صابت متعرض شد یک اشکال یا اخوضان نرکل یه سلطان کیه؟ سلطان در بین رید این سلطان کیه این اگر قائل شیعه رو سلطان منصوب در ما منصوب باشه به لذا از اعرض کردم شیعه ی فقه ولایی به خلاف فقه علسونت فقه علسونت استنب چون کار چون این نمیگفت. نمیگفت. که کار تابی استم باطل کرد، تابی به دلایل نبودست. برای امام معصوم دلایل کارت. این نی جعل تو هاکم، امام خودش این فرد میگوید مرد نهنداره، این نی جعل تو هاکم. این نی جعل تو هاکم و او همیشه شافعی نمیگوشه. بلکه مثل احمدی نهندار، که دوام نمود، سعی کرد کاش او دوالت نرود، سعی کرد باور آن. اینا هر روز می‌گذند، داره پیش پیچ خریده، تا و صد و اللي <سؤال> خوردار ده اون رو دانشیاش یه معلوم بود اومش برای سن بعد یه جاسوس میفرستن که آقا این خلیفه شما رو از ازاحت میکنه اطاعتش وقتی برنگه نه اطاعت هر خلیفه شما خلیفه همینش نظام اجتماعی رو به هم بزنید نظام اجتماعی باید باحالش محفوظ باشه به اطاعت ایشان ایناشون اعتقادشون بود با اینکه اون راه رو باطل وجودش کوتک می‌خورد و تصدیق می‌کنه گویا این عقیدهش باصله عقیده خلیفه باصله و در واقع دفاع از عقیدش کتک خورد و عطا معتصم هم کشما فسی خرقه و هم ایده زیاد احمد بن عبدلی از این جان صادق لبوش الله ختم شد مثلا یکی جانشان هم حاضر نبود که مسئله ولایت به قول از بین بره خلافت با ارغش محفوظه ایشون همین هستن محفوظه هم باز گفتن منم با ایشون هم. محفوظه هم. محفوظه هم. اون مسئله لذا به فکر فرمانه این که میگه یعنی خودمون از سلطان علاقه داره این طبیعتن باید تصویر بیشه در فره اهلسان نسته فره استنباطیه اصلا با فره بلایی ای این یه نقطه یه نقطه دیگری که این نقطه خیلی لحیفه و در فهم کلام خیلی کمک مستنم. مثلا مثلا توی لحظ عرب که خیلی از دلالات سیاهی هست من عرض کده همیشه است اون دلالت لفظی نسبت به مجموعه شواهد سیاقی ممکنه چند درصد در باشه اون دلالات سیاقی خیلی موثره یعنی این مطلب یک مطلب بسیار مهمه که انسان از یک کلام بفهمه سوق کلام برای چیه این خیلی نکته ای فهمیده این در عرب خیلی اثر داره اینکه میگن تقدیم و ما حق و و فیدل هست ما دهن ما دلالت سیاقی هم. اگر گفت ایجاد که نعبدو یعنی مخاطب بگیم این مهد کلامشو خداست نه مهد کلامشو عبادت خودش اگر گفت نعبدو که مهد کلامو عبادت خودش یعنی این در لغت عرب شاید در لغت خاص اینقدر تأکیب نروش اما توی لغت عرب خیلی روش حساب میکنن که اون مهد کلام چیه اون صوبه کلام چیه مساق کلام چیه خودتف میکنه این که میگه یا که نعبدو دلاله میکنه. اون نقطه هسته اینه که اگر میخواست راجع به عبادتش صحبت می کنیم گفت نعود و که این که ایاکه رو اول عبر یعنی میخواد بگه محط کلام و محطب کلام روی مسئله خدا نه رو مسئله عبادت خودم ایاده نعوده این خیلی مسئله ماه ما تو آیه نظر توبیه کافی از کردیم اینجا جا اکم تاسمون به و پیلید ادره نسکس آکفایه معتادانه آير این جمله رو نه نابونین ان نبع امکان از جایی به فاسرا متبعی و معلومه شده است که امکان ال جایی به عادله یوم این همون نکته اساسی کلام این نکته اساسی کلام کسانی که متصوف که با این مضمون دارن بعضی یعنی اون سو کلام این خیلی لطیفان این خیلی درک بکنید این در استنبات فقهی شما در روایت و حتی در تفاسیر قرآنی در کلام عرب به طور کلی خیلی موثر شاید تو های فارسی که مثلا ما وقتی که برای کلام من خاصن از اینقدر موثر نباشه اما در زبان عرب فوق العاده موثر در صوغ کلم ببینید من در آیه 90 اصلا خلاصه شده از صوغ کلام اگر برای فاسق باشه دلالت نمی‌کنه در جوجه صوغ کلام اگر برای تقسیم نوع باشه دلالت اینی که صواب که بگه ان نوع امکان جای دیری فاصله اون نکته فنیشه تعوذ نکنیم به فرمان بنده کفایته اون نکته پندیش اینه سوال اصلا این کلام برای چی صوغ شده امکان. این جا این جاهن خاصه این می‌خواد شرایط فاصله رو به ذهنت دقت اون صوغه شو فاصله نذره یا صوغه نظرش رو خبره اگر اون نظرش رو خبر باشه خود حرف خوبیه خبر اگر از طرف صادر یتداگ یعنی اما اگر نقطه مفاصل باشه نه رو خبره یکی از شگون فارسی هست که در خمنش تبیین میشه صوغ کلام رو نبر اینو به یعنی شما متهیر میشید که مثلا با شکایت که انرا امکان نداره چون بعضی جام قبول ندارم یا هر بار هم با اون آقایون نمیگن اصلا در بر مفهوم نداره اسم ما نمی می دراز بر نیست نداره اون نقطه پندی که نباید تعبور بکنیم باید خود اون فکر رو اون نقطه پندی شو هم برزن روشن کردن این نقطهی فکر دلالت است و این للم کلام، این کلید کلامه اون کلید کلام اینجاست که آیا این آیه مسوق است و صبح اشراجی به حالات فاصله یا این آیه نازل است و احسان نبر بخواد خبر رو دست بندی بکنیم اگر ناظر و نبر باشه خب مخون داره بید. یه خبر اگر از طر فاصل تو می عاد نیست، می اما اگر این ناظر به فاسق باشه این دیگه نقص ای نداره. این اگر نقصیر روشن شد پس حرف که یا هر شش یا هر مععی خود هم توضیح نمی نمیکن مندارطور گرد این توضیح نکس لکی اینه و من هرسب این دلالات سییاقی همیشه در کلام این خیال ندانید یک جایی هستی که این این خیلی الان راحت برای شما اگر آیه ناظر به نوع معقوله اگر آیه ناظر به خاصه خاصه منیش انقدر واژو مثلا از اطاعت خدا خارج شده این حتی در خبرش هم باید تبیین این راجع به حالات خاصه این وقتی نه می خواد تخمین بدی خبر میداره ببینید این حدیث مبارک ان قاضی یا به نظر رو قاضیه یا مذهب نظر رو سلطانه آه اون روایت دوها مرحوم آیه سهل و سهل روایت دوبون میگه امام بقیه اموال میکنه فیعکون و بعد ذالکه ارزاق اعوانی اون به نظر سلطانه پس در یک روایت های شد چی بگم؟ خیلی نکته ذریفه این خیلی یه هم فقط اون همون ها که آیا مطحب به نظر در این روایت مبارکه قاضی؟ حتی اینجا اگر قاضی باشه مخلوف این است که سلطان حالا خودش هم می‌ده حالا و ظاهرش هم می‌خواد که سلطان نبوده که به اهله بیت برگرده این سلطان رسما میلادین قاضی میشه یا نه این یک بحثی کاره الان اگه دقت کردیم تو عمل بحث عبارات اهل برای نکته‌ای بود حالا نکتهش هم باز اهل سنت اینو مطرح کردن که رسول الله خووین ما دام رسول الله علیه السلام بهش کوی داد اونجا از طرف سلطان نگاهم کرد. روشن روایت اهد عهد مالک اشتر از طرف سلطان چون امام به مالک میگه لعنه و مات یذو و علتهم مستکثر. هی این ذریفه این نکشه. پس اگر اینجور باشه این رواث با این نکته روشان شد قاضی بین قریه سرین یه خدا سلطان این اگر شرس شیعه بود این اینجور سال میکرد که آلا سلطانی که شما نهست یا خود شما به قضاق پون میدید یا نه اینجوری واضح سآل میدن از این نکته فنوی روشنی شده خیلی ضرافت داشت اگر گفت نکته این آمده میگه این قاضی میسون از سلطان تو قاضی نه سلطان. این قاضی میتونه از سلطان طول بگه میادن این خب این اگر باشه این مفهوم شینه که روایت نکسک نکس این است ای نسی... اصلا ما نمیدونیم اصلا غیر از ای که ظاهر خیلی واضحه که این سلطان سلطان اهل بیت نیست اهل بیت نیست حالا ای اصلا چون روایت اهل بیت قاوی اصلا اهل بیت قاضی که خیلی از واقع خارجی غیر از واقع خارجی یه حمل میشه برای سلطان جورد اصن نمی این قاضی هم شیعه بود یا بوده یا سنی بوده. تا دیگه هم دونید. این در این طاریا تعیین. آیا یک شیعه ای بوده که چون اومد از امام سوال کرده یا یک سنی بوده. این سنی هم واسه هر کی به امام صادق هم مصداق بوده. یعنی یه رباطی بوده که به امام صادق به وی احترام نگاه میکرد. ولی خود خب می که امام صادق خود رباطی بود به امام رافیده. یا دو مخالفین جزو اشد مخالفین با نظام. علامه واسه شما حضرت حمزه امام میفرمایید که به قد تو، رو به اینا بینشون مردم مرافعات، چرا به طاغوت مراجعه میکنن؟ مثلا تصرف رو امام که اگر مراجعه کردین به قضات جو، حتی به نفع شما حکم کردین، اون طوریه که میگین حرامه، سفته، حتی اگر به نفع شما باشه. که خود علما دیر گیر که اگر به نفع بودی تو سفته. که بعدی این هواش دیگه بوده خب میدونه امرو با سلطان و اون امیر مامورینی که سلطان قرار داده و با خود قاضی و با هم مختلفه مثلا یه روایت داره که امام صادق علیه السلام همون تو بازار رجیشه اون وقت به دکان میگافتن میشه دک تنها دک می مثل باشه یا به اون بلندی دکه قضاون قاضی که قاضیا اونجا میشستن توی امام کیشیان فهم که بیان پیش یک کسی توی دکه قاضی میشه قاضی میشست حاضر دوستان این رفیق ما با قول با هم ماست میشین با اولام زون شبیه چایو حال میگیرن من تعیلونه باو بکنم میگم مثلا تعیل اون آواشه همین یادا میشین با همگی با اولام هم ما و برمیونید دیگه گارد میتونه چای بخوری باز دیگه sohbat حضرت اما تخاف و انین زل علی عذاب سیام من فیلم عجیبه هر حین نشسته عادی هم نه مخصوصا یعنی ارتگاه تو ازمان همین شیعه و بود دیگه تو منافذ نداره سائل شیعه باشه نه بکره این کوری که میگه مشکل دارم خون فداخلی بایدان از زندگی میکنه خمایشون میرن که بی از و مشاهده ایدان میگه به گفته کره چوب گفته علی بن یفتن. با همون و نکته پولان این سه به کره ها دارند ما الان حسین وش پارت صوتانی شد صوتانی سر میکنی چه یه و از اون مردم از اون مردمی شفتی که هر آن یا تی بیشتر دنیکی میگه و دوام. ولی از ما هم هم دوبار کراهت ها کرد. یه مقدار زیادی این سوال ابهام داره, داره تو میدونی چیه این می قادیشی اونه احتمالا سنی مستدعفی بوده به امام سادس به چشون یک این بزرگاه میکرده به این جمعه شوال کرد که قادی میتونه علایه این روایت مبارکه چون سندش هم صحیحه یک ابهامی در اولش داره غیر از ابحام هم تماما و کمالا مورود روایت روشن نیست زواهرش بعد سنت میکنه به احتمال داره خاذی بوده که منشوب از قبل اونها بوده و تایید کار اونها رو می‌کره خب سرش بعد نیست بله خب دلال میشه که یه می پیدا میکنه حدیث شماره است و نه عدته این عدته از برهانی شماره 23 21 که کولینی کولینی عن ادته من اصحابنا ان احمد بن محمد احمده محمد در این طبقه بلاد حسین سعیل سعی اشعری قومی است برمی هم سره است اما ظاهران اشعری باشد انه به حسین ابن سعیل انه اخیه لحسن انه زرعه انه سماعه هم وقتی در ادهی رواز داریم که حسین سعید انه زرعه میگه اون روارد اختازیگی داره چون حسین خود زرعه رو درد نکرده برادرش حسن وقتی زرعه رو دیده چون ارز کردن ما از کسی که سند رو بررسی تحلیل تحریر تاریخی هم باید ببینی، اون سیر تاریخی. چون حدیث اولش دو طبقهش کوفه است، تمام کوفه زرعه کوفه. بعد رسید به اهواز، حسین سیید. میگن یعنی حسین خودش زرعه را در کوفه می‌مینه، برادرش حسن می‌ره. هر جا میگم حسین سیید عن زرعه، یه چیزی افتاده، یعنی عن حسن ان زرعه. بعد هم این حدیث به قوم اومده. دون احمرام برای میراث اثر حسین صیفی یهو وجود داره ان در یک ریت اگر ریت نقطه خیلی فنیlatitude چون خیلی شبیه ظریف داره چه تگی ظرافت‌های تراوان بر خدا تفجیر بده یک دو بار چند ذره صحبت بکنیم یه مقدار میراث‌هاش رو اصحاب ما به اهواز رفتن شجاع احمدم هم رفته باشه یه مقدار هم اواخره هم ظاهرا خود اینها اثر کردن حسین سعید به قم اومده هستن نگاه می‌دارم در منزل هاشمی نعوان هم نازل شده بر حسین سعید و او آثار علمی رو در احواز تدوین کرده و میراث ایشان میراث احوازیه، و که نشر آثارش در قم یعنی کلا نشر آثار داشت ابن سماع علی عبد الله علیه السلام حدیث اصطلاح خودش رو موثق به خاطر زرعه ما از کدی به نظر ما سماع وافقی نیست و خیلی مشهور شده اصل نداره علی عبد الله علیه السلام قاضی عرش خاطر قبول کفر به بلاخ این ببایت رو مرحوم شیخ قولیمی در همین جلده هفت هم در ابواق قضا آورده و بعد فرمودست ورواه و شیخ به اسنادی یعنی حسین سریف شیخ مستقیم از کتاب حسین سریف اونم از کافی گرفته باشد ولده قبلهو به اصناد یعنی علی ابن ابراهیم مثلهو این ولده قبلهو به ذهن آذر میاد شماره دو چون این سه قبلش میشه شماره دو یه قضیم پرمه بسید ظاهرا با سال و سال اشتباه کرده باید باید به قبل و این شماره یک مرادشه اشتباه نشون داره سال و سال از این کارا داره این کار الهم در آن در کتاب جمال احادیث تکرار نشده قاید سال و سال سه تا چهار حدیث از کابی نمی میکنه بعد میگه ورواح حادیث آخریه. بود ورواح و شیخ به اصناد یعنی کلوچه در در هم. همه اول و ثانی آیا بروزی هر حدیث است؟ تمام تخریجات هم اونجا داره یه حدیث لومن سوم نیست. نخست و سال اول اشتباه هم داره. هم برای حدیث شیخو در زیل حدیث اول نیست. فراتر نشده از واخو خداو. زیل حدیثیه. اسم شیخ نبود. شیخ حدیث اووردی. سومیان اینو در زیل حدیث سالس اووردیان آرمان ولی قبل از اون. قبل از هم عادت هم می‌خوره به لومن. حساده من حدیث لومن علی بسیار ساده فرمی اونجا، بسیار این مراد اینشان اوله نه دوم هر کردم حدیث دوم رو شیخ از ابن فضال کرده توضیحاتشه از کردی روز دیگه تکرار نمیکنه. کنم از اشتباهات داره این هم داره سال و سال در من چون خودم مستقلن سالها و سال فضالیس کردم از این اشتباهات داره مثلا باید میاد و حدیث الول به اصنابی اول سال ما در همون عبارت می این یک نکته. یک نکته خیلی ظریفی وجود داره که این میتونه خیلی کارگشا و کارگشا بشه برای اسامی که به حسب ظاهر الان پیش شما این اسامی ضعیفن حکم به ضعف می کنین. معلوم میشه که بزرگان اصحاب ما یک نکات لطیفی رو به کار می‌بردن. ببینید این حدیثی و عمر رشاد و رشاد الحوکنبالکوف بالله از طریق سماعه الان شهارون جلد سجارت نیست اگر جلد دوازده هم این چاپ بود یا اگر توی همین کتاب همین کتاب هموشون باشه در اون جلد دوازده در صفحه شست و دو حدیث سماعه محسل آمده و صح کذا و کذا و کذا و, و, و, و رشافل حکم و کور تسول حجام آمده محرالبقی آمده ادهی آمده به قرص می کنیم خوب در قضا شماها چیمها یک از امور آمده در آخرش آمده اره شاخر حکم و القوخ اینجا الان روشن شد اینجا مرحوم کلینی تفصیلی کرده هم جو هم کلینی کامل آورده هم شیخ کامل آورده هم کلینی کامل آورده البته شیخ از کتاب حسین فعی کامل آورده شیخ از وار کلینی از اون دیگه هر دو شم تفصیلی کردن تختی به حسین فعی ما در بحث تختی بحث مفصل رو مفصل کنگاهی تختی الان در بحثایی رو یاد تختی این مشکل نیست. کنند هندش آسانی. اون تختی اختباهی در کافی شده گایی هم تختی تو کتاب حسین سعید شده یا حتی محبوب شده اون خیلی مشکله اون علمی قومده ها اون مسادر اولی ما تختیل کردن که دست ما هم نراشیده به ذهن من در اینجا خود کتاب حسین سعید تختیل کرده حالا اون نوقیه فنی کیه؟ خیلی داخلونه. میشه اگه مراجعه کنیم با اون حدیث بزرگی مقابلشون با این حدیث، اون حدیث که انواع داره و مفصله، اون رو مرحوم شیخ طوسی با همین سند آورده و نظام درسته سندش. اون حدیث مفصل رو با همین سند و حسین سعیدی انتقید لاسان انظار زمان سعی جو این ذیل هم با همین سند یعنی به اصطلاح این در هر دو کتاب با بوده. سریعی بود کلینی خوب درد بکنید مرغوم کلینی اون مفصل رو با سند دیگری آورده خیلی عجیبه خیلی عجیبه واقع. اون سند هم دریده یعنی مرغوم کلینی از طریق احمد برقی آورده از ببخشن از طریق محمد میحلی آورده از جامورانی جامورانی محمد بن علی عامل جامودانی اهل ری بوده و دریشه. جامودانی اهل ری بوده این حدیث رو از کوفه منتظر رفته به کوفه از حسن بن علی نبی حمزه گرفته. حسماه. اون حسابی دریشه علو. یعنی متن مفصلی که کل اینا آورده مثل متن مفصل شیخ طوسیه. الا اینکه شیخ طوسی با سند معتبره آورده، کلی با سند ضعیف آورده. اون خیلی عجیبه. این متن مفصل متن نه اگر این جز واظو چه صبحیان است اگر درواز کنم متن مفصل همین که ارسال باشه جامورانی جامورانی ذری حسن در نبی هم هم خیلی عجیب از اون همون متن مفصل شیخ از کتاب حسین سید خیلی عجیبه این متن مفصل کلیده از را حسین واقعا کلیدی مخیر حواسش کتاب بباره گول مختبری البته حسین سید اون مفصل رو انه عثمانه دن نیست انه عثمانه دن این اون مفصل در کتاب شیخ بلا الان خیلی چیه؟ ما همین رو گم. چون الان یه نگاه می‌بندن میگن در کافی این همه توصیفش می‌کنه این حدیثی آورده خب هر کتاب حسین سید نیاورده. شیخ مثلا حسین سید آورده. ببین کتاب حسین سید رو اینجا آورده از حسین سید، اینجا آورده از سید. این, این زید از حسین سید آورده. متن رو از حسین سید نیاورده. خیلی حاج واقعاً واسه شعر ضعیفه. یعنی تفتی کرده او سمسایی بله زاهر او سمسایی تفتیم کلونی مران شیف توسی مفسر از او سمسایی دورده چرا کلونی از کتاب او سمسایی نهی بود؟ خب مندشم بود دیگه روشن شده؟ مدتب اشکال هر هرزار بگیم کتاب پیشش نبونه که خیلی درکه بگیم در این کتاب همین کتاب مرحومات ردبانی سفری شست و دو من توی این خودم رو مقابله کردم نوشتم. هر صورم که برای آمین دخونم که ببینم مثل ان هم ان احمد بن عبی که برقی باشه ان الجامورانی ان حسن بن علی بن عبی حمده ان زرعه ان سماه خیلی عجیبه قال ابو عبدالله از توتا انواع اون من ننها کس خلحجام دار شاره و اجر و زانیه و ام مره شاخر هفت اوال پوتالله هفت هم داره. این چه دیگوا که دو تا اینا عمل جز اینه. به خاطر اینکه پس دو خب شیخ رضوان الله علی خودشه. خود شیخ, خود شیخ به اسنام یعسین، یعنی عثمان، عیسی ان سماع نرود. سماعم و رسول و هم یعنی اونجوری سایه بود. این شادر جنب اینا این داره شو. یعنی حسین با هم یکی هم باشه. نه. استعماله یا اون کتاب واسه حسین سعیب نبوده، نبوزه اما اونی که من فکر میکنم که واقعا اگر راست باشی این احتماس میشه این بزرگان ما چه از ما در مثلی که شیخ از حسین سعید نعربی کرده خوب در قصف بکنیم داره و منها کس بول حجام در مثلی که مرحوم کلینی است همین سماعه نقل کرده کس بول حجام الاشاره پیلنی فکر چون این مسئله کسر و حجام و این سنت هم در حد رو اهل سنت که کسر و حجام هست خود اهل هم بحثش اینه که چطور کسر و حجام صدور باشه به هزار کراهت کرده اگه ایشون بگن اگر شرط بکنه قراضه بدن اگر هرچی بهش داریم این یعنی شغل‌هایی هستن که هر کس باخت می‌زنه شده هرچی داریم معامله نکنه که اصلا اینقدر می‌گیرن اقامت کرد هر چی دارن حتمای از حال ما هم ادوهی به استناده کلینی گفتن ازا اگر واقعا راست باشی واقعا شهن کلینی خیلی بالا میتونم اما اگر واقعا راست باشه مرغوم کلینی به خاطر اینکه که در متن موسیقی ازا شارت نیست چه ای که سیسی که نرکده از موسیقی سعید ازا شارت نکرد خود حسی ها کن به <تصح> بله بله اینجا این هم بکنم اشتهاد... نه اشترها مخواسته بگه بلکه چونه که سند اینه دقت میکنم حالا ببینید اینجا اینجور داره شماره شیش در همه اول مایو صفحه شست محمد ابن الحسن به بی اصناد یعنر حسین سعید ان اسمانه نیمیتا ان سماه قاله از سختان را اون منها کس بله و و این اداشارت نداره پس در حقیقت مرحوم کلیمی زوانه الله تعالی نمازم اشار بکنیم محصولی که یکی از ببارات اهده ایت آمده حالا تصادفت نسخه به جاموران نسخه خوب دادیم یعنی میخواد به یه چند حجام فی نفسه نیست اگر قرار جادیده دیده آقا مثلا من هجامت پشت نکنم اینقدر میگیرم اضاشارت خب ترموش رو هم میخواسته اضاشارت بیاره هم میخواسته اشتهاد نباشه بله اگر ما باشیم خب به مردم کنیم دیم آقا تو دامورانی هست حسن نهلیه لبیرم برد وعیف هست اعتماد نیست متن کلمات بر روی شیخ طوسی قابل اعتماد توش ضعیف می بود. <تصفح> خود راضیه؟ اونا می‌خواستن که ما این مطلب رو به یه حدیث داره و سندش خالی از اشراق چون نسبتاً خب احتمال داره همین باشه. البته اینجا یک یه نکته ظریفی پیش میاد. و اون نکته ای که خب شاید اهل سنت شما اجازه از کجا آوردین؟ چون در روات اهل سنت اجازه شرط ما در بحث ترجمه‌ها چون بحثمون خیلی میگم چون دو مختلفه. البشر بنای و آیان در اصولی هستند که هم تخصیص و هم تعقیید رو بیان می‌ذارند اما ما ذکر کردیم یه جور تعقیید و تخصیصی داریم که اینا تغییر نیستند و الان ما امام گیل مخیض شده مثلا اینجوری میگن تخصیص زده یا این خورده اینجوری رسوان تعقیید یا المؤمنون عند شروع سو الا شرفن حرما حلالن و ها الله حرام تخصیص خورده توی متون اهل سنت این ذکری نیست المؤمنون نشونته الان اهل سنت المؤمنون اندشروته هم مشهورشون قبول درموندن بزرگانشون حدیث المؤمنون اندشروته من قبول درموند ذهنشون آمده مثلا من یک کتاب بخرم شرص که یک کاسه شراب بکنم خب نمیشه المؤمن اندشروته میگه بار انجام بدیم این در حقیقت تاییدی حقیق نیست خود از بکنید این در حقیقت یک نوع تفسیر از امام امام مخواند بفرن آقا جان المؤمنون اندشروته هم شد انتظامات شخصیه قرارداد های شخصیه شرط قرارداد شرط. هیچ فرد مکلفی در هیچ قانونی نمیتونه شرط قراردادی ببنده که خود قانون نزید سوال بگره شرطا اهل حراما نهاش تخصیص نیست یعنی به عبارت مخران یک امام میخواهم بفرم از مومنون اندشوته هم سابطه جزا سنن رسول باقیه دو تفسیر میکنه چون شروع قرارداد شخصیه در دنیا همچه قرارداد شخصی نیست شخص نمیتونه طبق قرارداد خودش نظام رو برداره تمام قرارداد های شخصی خواهی نخواهی محدود میشن به نظام به الله اگر با قرارداد شخصی نظام برداشت خبیه چی نمونه بیاده نظام لگرده اینه اللا شرطا اهل لحراما اینه من ها کسب الحجام امام میخواد مخاطب امام بفهمو ثمن حجامه گفت کس کس رو کل قراردادیه تو خود کلمه کس اشاره خار داره می میخواد بیاری اگر میفهموز ثمن حجامه مثلا ثمنو خم نمیخواد بگه خرید و فروش هر پولی به ازا اشاره اونجا معمول کس کسب الحجام خبیثه کسب الحجام یعنی به صورت نتیجه گماشت نمی‌کنه یک قرارداد باشه. پس مرحوم کلینی دنبال این بوده که این رو متن حدیث قرار بده، خودش هم تصریح نکرده. در کار کارو چه؟ شلونو غیر متن صعب. وله به روایت سعد صدق باشه. چرا؟ چون خودو احمد نبی ابی برقی به حال این مثاثه است که کتاب احمد برقی است. خودش <تصف> به احمد بردی در قم عنوانی برای خودش داشته پس مرحوم کلینی و فصل رو اگر واقعا مراد این باشه من چون نسبت نمیتونم بدم جنبه دشواری اگر واقعا این باشه میشود که چه این من درگیر بوده در نقل خبر و در متن خبر شیخ رضوان الله تعالی از کتاب اوتینی تای نکرد چون توش اجازه خاص نداره طالع یک سلام من اجازه ولا اما زیلش شو کلینی هم از کتاب سعید کرده عره شافل حکم و کفر در زیل مشترک هست زیل رو از کتاب حسین سعید نر کرده متن کامل رو از کتاب برگی نهاره کرده یا از میراس های برگی چرا؟ به خاطر اینکه در متن نقطه هست که در متن حسین سعید نیست رسال الله و محمد محمد